چیه شما هنوز یاد نگرفتید وقتی وارد اتاق اسردبیر میشید در بزنید اگه توضیح مناسبی برای این کارتون نداشته باشید دفترای خیلی بدتری از من سر میزنه هر چیزی که تو این نوشتین دروغه من با چشم خودم دیدم این نشریه یکی از بهترین نشریات حالیه ایران شما هم اگر نگیم بهترین عکاس یکی از بهترین عکاس ها هستید ولی این چیه؟ یک ماه حقوقتون که منم دو ماه کرد برای چی؟ برای اینکه دیگه نمیتونیم به همکاری با هم ادامه تا همین چند وقت پیش که داشتین از عکسای من تالیف و تمجید می‌کردید، می‌گفتین مجله رو شاخ عکسای تو میگرده حالا چی شده؟ متأسفم من بیشتر از این نمی‌تونم توضیح بدم شکیبا. ثقاقد اینو مطمئن باشید که این بر خلاف میل باطنی بنده است. خواهش می‌کنم ازش تمکین کنید. برید پشت سرتونم نگاه نکنید در افتادن با این آدم ها اینجور مثل بازی کردن با دوم شیره این مجلده احتیاج به عکاس نداره شما که خدا رو شکر کار براتون فرام داره محراد ازتون خواسته که این کار میکنید شکو جم نه غریبه مثل غریبه ها نه رفیق مثل رفقا. نیار مثل عاشقا نیست نیست یه زمان جفتک میندازه یه زمان برق خندش چیگرم آتیش میزنه تا میان به خودم بگم این مال تو نیست بخواه تو نیست خاطر خواه تو نیست برق نگاهش. برق نگاهش واقعاً بنده قصد تکدر خاطر جناب عالی رو نداشتم همه میدونن هر جایی که ایستادم فلواقع در اثر پشتیبانی و اگر نبود لطف و همراهی شما و فروغ زمان نه نه خانم فروغ زمان الان معلوم نبود من کجا بودم و به چه کاری مشغول شما میدونی من خودم رو تام و تمام مدیون خاندان بزرگ شما میدونم قصد بی احترامی و احترامی جسارت نداشته و ندارم همه میدونن من همه عمرم و مدیون نه بابا این خیلی دیگه بادمجون داره آبچینیه خوبی خونه ای؟ نه مالا خونه نیستم با هده دست همون گفته به قصد تفریج رو تفریف برده باقه علا و اونجا من همیشه خونه معلوم میشه امروز آفته از کدوم برزده که شما خونه ای اتفاقا یه کاری دارم باید برم بیرون میخوای شهر بپاک کنی؟ محوان نره یک کار بکنی از ما چین به دل بگیرن روزگارمون از اینی که هستی آتر بشو ها چینه این بزرگوش اگه میخوایی جواب رد بدی که بعید میدونم نداری جانم باید حرف بزنه وقت داری؟ بهشون بگین شکیبا خودشون میدونن بفرماییم یه لحظه سب کنه؟ میگه نمیتونه کسی او ببینه؟ فردا تشریف بیارید اداره. ولی من باهاشون قرار گذاشتم. بهشون بگید همینجا منتظر میمونم. میگن حالشون خوب نیست. بفرمایید. بفرمایید برید. آخ چه زحفای چرا کنم دیگه. ورماچو. سلام. سلام دخترم. بیا تو بشی. من برم آقا نه کارتون بکن بره. از این طرف ها فردیس ولی شو خوبه ممنونم لطف دارین شما میدونین من خودم مدیون تام و تمام خانواده شما میگونم ببخشید بب... آقا ببخشید مذیرت میخوام چپاری بکنی؟ میخوای آقا من برم شما به کارتون برسید قراتون که تموم شد برگردم خیر، حواست به کارت باشه بله چشم خب اینجا چه کار میکنی؟ نمیخواستم مهرات خان از ملاقاتم با شما خبردار بشه اون همه جا چشم و گوش داره در هر صورت بومی بره بگو داشتی چی میگفتی؟ عرض کردم من خودم و مدین شما و خانوادتون میدونم <تصفيق> با که کاری بکردی تو خودت با استعداد بودی در هر صورت اگر لطف شما شامل حال من نمیشد از من چی میخوایی دختر جم جون عطامک رکب کن عطامک خواهم شعره به رو گفتن و پوسکنده سخن گفتنه آسمون آسم ریزمون بفتن فقط اضافه وقت میشه با مهرات صحبت کنید شما بزرگترش <تصفيق> با چه چندی پدر سوخته؟ همهش فی قرابکاریه <تصفيق> چرا رنگ به رنگ میشی دخترزون من از اون بخونه باخمرم اما اون از این در دل... وقتی که دست ولی من دلم با این وصلت نیست اینو نمیتونم به مهرات بگم از قدیم گفتم تب سود ارخ میکنه هرچی سفت و سخت در بگیری اون بسیرتر میشه به دست اردرت واسه آسود شه دست از سرت فهمی داره آدمی ذات اینطوریه <تصفيق> هیچ کس مثل من به این په دستش نیست از قدیم گفتن پسر حلال زاده ادایش باش راویه دبا کشیده دست از سر فرق, فرق فرق فرق بین و حفظ. فرق بین درخواست و دستور. من برای ادای اینم راهی غیر از زیر پا گذاشت نجابت و شرافت بلدم قطع اندازه آدم ها به مولوم اکمتشون نیست به شرافتشونه من اگر آمودم اینجا به خاطر خودم نبوده به خاطر مهراده نمیخوام سر شکسته و داغون بشه چیزی که بهت گفتم از پس یه عب تجربه بیاد روزگاه روز شده به خود سخته سلام داداش گلم مفقر مرحب اینه مینیونی می؟ خوش باش دارم اونگاه از خیلی خیلی خوبه منه خیلی هم خوش کده نه از این تو هست نهوتونو بخوریم تحملاتونو میزرم ای چرا وایسا بهتری نیست که رانتفاتل رو رزرف کردم که با هم نهار بخوریم کار واجب دارم من چطوره بیشم خوبه همه جنتلمنه اروپا آرزو دارن زن روز بگیرن زیبا باوقار بی درد سر ازیمت خواستی کسی رو هم بندازی قبلش خبر میده بندازی چی؟ ابله میدونی کی آرزو دارن با درون سفارتا یه فالوره بخورم وقت داداشم مراش رو میگشه میره میدونی کیه این باباش تو شعبی تو وزارت خارجه است من مهبانو رو میخوام به دستشم میاد. عشق مهبانو واسه تو جز درد سر هیچی نداره مهبانو واسه من دریای نور کوه نور توی فتح باشو کوه به ازدواج ساده دقیقی میترسم ازید چی مهبان تو رو ما شازده یه چیزی به زبان خوش به دست میاری یا به زور کمه <تص> ولی اگه نگیری ناراحت میشم. خدا نمیگیرم. خدا برای رفتگانت رو یاسی میکنم سلام خانم شکیبا. سلام پروفسور. با من کاری داشتین؟ من؟ ببخشید، یادم رفت سرم شلوغه. باور میکنی هنوز نه ناهار کردم نه نماز خوندم. آ. روسی شنیدم تو روزنامه مشاجره داشت یاره؟ بله. به هم گفتن دیگه نرم سرت. چه بهتر هرچی از کار دولتی دورتر خانم یه بیستر آقا یه بیشتر اصلا خود آزادگی گفتم حالا که بیکاری بیای اینجا یه کاری برای من انجامش بدی آقای دکتر اگر فکر می‌کنید که من به خاطر آرم شما به اونا دعوا کردم و اخراجم کردم باید بگم اشتباه میکنید دعوای من به خاطر اون چیزی بود بس... که من ننوشتم به اسم من چاب کردم من کار می‌کنم که درآمد داشته باشم به اعانو زیر دین نیستم گفتم بیا اعانه بگی اصلا شنیدی کار من چیه بریم پرویز خانم دسته این دوتا جوانه بزنید تو دستم برم سر خونه زندگیشون والا مهربانو جای خوهر منه جای خوهر بهتره با عرباب دیشور صحبت کنی انقدر اصرار نکنه بره به زندگی سلام تو اینه که این دوتا جوان با سلام سلا, سلا میدم تو از که تالا قوهی تشریز سلا پیدا کردی بروز آشه باسه پربیس شما آقل ما کم اقل ما کم شورکتن ما گفت ببین پربیس خوان من با این جفکش های خودم یه چیزای دیدم با این جفت های یه چیزایی شنفتم که واسه آف ما با، شما با مربان و خانوم و فریده خوب نه حرفی نیست. اگر بود مهبانو به این ها فروس کن! ها! به شما نیمیگه لابت نیت عقصه بگه شما خودت هم ها ولی زیر بار نمیری. ببین فروس کن اصلا میگیم در دهن منو میبندیم لال! لال تو کامم بهش دیگی نمیگیم ولی من تو میشه در دهن مردمو بس میشه نمیشه بس! کن بیبین اگه شویرش باشه بیت بیتره بیتره دیگر. خدا رحمت کنم این رفتگان پاکوز مرحوم بدر من حکیم بسیار رازخی کل این کوهای تهران و اطراف شد دنبال گیاهای دارویی، وجب به وجب داشت میخواست یه کتاب مرجعی داروی دارویی در مرگ امانش نداره اگه زحمت بکشی وقت بذاری از این گیاه های دارویی که داریم از هر کنون یک چند تری اکس بندزیم کارمون مرخوم زمین نیم بله بار بوزنامونگاری اجتماعی خیلی فاصله داره ولی تو این شرایط برای من انجامش جزا دارم آنجان تعدادی از بیمارشون تا دم مرگم رفتن حتما اطلاع دارید که دوتا از مریضاشون فوت شدن که البته این اتفاق ها حرفه لا یم اما من نگرانم میترسم از این که فرق پس فردا درده سری درست بشه که هیچ جور نشه جمع جورش کرد چیزی نمیشه من تو بجهات فرو خانوم اولین وزیر زن رو مقام ریاست بیمارستان بیشتر اول زنیه ایشونه اصلا اتاق عمل و تیج جراعی و خون و این چیزها در شهنشون نیست اینایی که مردن همه آدم حسابی بودن؟ یکیشون از مرتمدین بازار بوده خانواده داره حالا می چیکار چکار کنیم؟ و گزارش تهیه کنیم یه خبر بدیم که روزنا رو چاپ کنه و ماجرا رو منصور کنیم به آدمایی که قبل از فرکتوربی مارستان میده مننجره دکتر لببول سفر بر خانشه بعید میدونم این دختری چمش مهوان رو قبول کن و چیزی بنویسه نگران نباشید خانم این قویل کار ها رو بهبت ختم حدتی دا شما به قاهت به حدتی الان سی جلو آقای کاشفی پر چهسب من والی همچی نوشته ای زدیسلام کار رو؟ من از دو جوانی کارم چاب خوردن شروع کردم تا به اینجا رسیدم الف تا یا مترواد هم از هفسام یعنی نمیدونم سردار نمیارم چهره اینو سردار بودن یعنی بردن آبروی آدم بزرگ این همه دروغ افترا جلو آقای خیر سردار بردن یعنی اینکه یه که کیو کجا بود چه جوری از جلوی چشم من بگذر من نفهمم چاپ شه چی فکر میکنید چه شجونه که من چاپش کردم پولش گرفتم <تصفح> یه مسئله که کار ما نیست، نوشته شما هم نیست. چاپ میشه. بعد از شما تقدیر رو تانجیدم میکنن. اینه واسه. یه جواب ساده به من بدید. این کار شما هست یا نیست؟ اگر نیست چرا تو روزنامه شما چاپ شده؟ اون پیرمرد بیچاره به من شکایت میکنه که نکرده. چرا نکرده؟ برای که میدونه کی میکنم. کار از کار از پیش نمیره. مثل من که دست گذاشتم رو دست دارم نگاه می کنم چون می دونم هیچ فرقی نمیکنه کی میفهمی اینجا فرنگستون بیست یعنی, یعنی یه مطلب بخواب از شما تو روزنامه تون چاپ می شه بد می شید می گین دستتون بر نمی آن خیلی شماست که متوجه نیستی این نظبیه و قانون و عدالت رو درست کردنم هم سالم و سرگرد بشید. و الا کل اونا و کل این مجموعه مولا یه مصروفیه دربست من هم از شما هم از روزنامه تون شکایت می اجازه نمدم به حق من خدا دارن کنید. بنده خدا، اونا اجدهان. اینجا اینجور آتیش میزنن با اجدهای که نمیشه سر شک. شکی با بفرمین منتظره به دیگه اینجا منتظر من نشیم چرا چی شده؟ بدین به من چرا ناد آشوفتین؟ من دیگه چون دفتر نشی یه کار نمی‌کنم برای چی؟ دوست من دارم درمون دشته بزن عوضی ها فهمون رو بردم، فهمونهای باهی چی؟ اینا؟ پایتون رو نواحد نکن؟ که یه دکاپونی، یه دکاپونی. نه، مو شما نمیشم. ماشین است، خودام میرسم. خیلی اینا رو من ننوشتم. بله، اما اسم شما توی مکتری. خدایی ایشون تماوش این اسمان من من نمیدونم چرا این کارو کرده اما قسم میخورم که من ننویشتم. نیازی به قسم نیست. من نون و نمکشون رو خوردم، نمکشو نمیشکنم. اگه شما مطلب بنویسم بعد بیام زل بزنم تو چشماتون. اخه واسه چی؟ برای اینکه نمکگیر خونه فروق و زمانم هستی. اگه اینجا یه بار نون و اینجا چند ساله که دارین نون و نمک می‌خورین. باباجون، 4 عدد خشخوش براتون ببرم. آره باباجون، چهار تا. چهار تام به تخت آخر. خیلی شما منو درست نمی‌شناسید. چرا تو طاقم؟ خیلی خوب پیشناسم اتون درماردتون پرتجو کردن میتونم بقرار عروسش رو پرسرسنه بشی بعد میگی من منه پیشنهاد ازدواج اونها سال هاست که هست من اگر میخواستم خیلی پیشتر جا رو میگفتم آخه چرا باید برای پدرشان مستقی دور رو کنم روشنه چند نفر از رعملای ستمکار فروگذر زمان از بین رفتن. خب لازم سره یکی ریخته بشه دیگه چه کسی بهتر از پدرمن؟ می‌بوره اونم تا خاره داره. پیش گفتن این رو که توی مسجد گوهرشو دستور کشتن مردمو داده رو عمل کن نکرده. به خاطر این همه چیزو اندختن گردن بابای من. بابا جون دارن. من از خانم شکی با خواهش کردم برای تشکر خدمت برسیم. قابل شما رو نداره. هیچ شکیم. اگه اون مطلب نوشته بودن یقیناً با من همراه نمی‌شدن. خوشن که کار نیست. شا به فکر معالجه مریض خودتونی معصومه من میدونم خانم شکی با این مطلب ننوشتن ولی چاپ این مطلب تو روزنامه به اسم ایشون خودش نشون میده که باید بیشتر از اینا مراقبت بکن باز این روزنامه ها باشن و نباشن فرق نمیکنه هستند برای اینکه در مواقع لزوم وقتی دستور میرسه به کسانی که نمیپسندن و تو لیست هستند هر انگ و تهمتی رو بسند. خانمی شکی با بهتره که دیگه طرف معاشراتشون رو عوض کنه با آدم روی صحیح نشسته بردار ما یا کنید فردا پاس جدید میاد مطبعه اینجا بستقر میشه عرض داشتم بله بفرمیدن رتون بخوام با خودتون و تنها حرف بزنم خیلی عذر بخوام الان که سرم بسیار شلوقه سفارش آگهی دارم بله آقا جم باره بگو تو قهده بیارم. بله آقا چشم خیلی خوش آمدی. بفرمید بشینید احیاناً تعریفه ی ها رو که مطالعه فرمونی برای هر روز برای صفحه اول دمبرین می کنه به عبارت ماهی ست تومن برای شما مبلغش مهم نیست اکسای جزاو با نوشته خود خطباً خیالتون راحت باشه مطلب سیاسیه نه خیر مطلب بارتون می بسیار عالی فقط برای یک ماه میخواید اگر ازتون راضی باشم برای طول مدت یک سال شاید هم بیشتر مطمئن باشید ما رضایت کامل خاطر حسرت تعلیم فراهم میکنیم احکاستان همون خانم شکیباس دیگه همون هنرمندی که از فرنگ درگشته بله البته حال اینجا نیستن البته به شما اطمینان میدم ما اکاسای آرتیست و خبره ایده. اجازه بدین اجازه بدین خواهش میکنم اما بدین اگر اصرار دارید بله خانم شکیباز مرخصی بر میگردن حتما قدر این رو باید بیشتر بدونین نظیره ایشون کمتر جایی پیدا میشه بهتر بهشون پیغام بدین از مرخصی برگردن بله فرمایش شما بسیار متین حتما قرارداد, قرارداد نمیب... آقا سایتون کم نشه آقا حالا مهراد خانمو خنچگاه کنم برو خانمو شکی برو هر جسود راضی کنم برگردیم ولی خاش آقا قبول نمی کردیم معلومیست اینا بعد از این چه خواسته ای داشته باشه آدمی که اینجوری اسکناس در میاره میکوبه روی میز یعنی اینکه که یا باید خودمون راضی بشین یا اینکه که به کتک راضیمون میکنه. سلام شما اینجا چی کار میکنی؟ غیره نیست که هر وقت دلتون خواهید در خونه ای ما غصویلتون تو ماشین جامونده بود ممنون هم همینجا برمیدارم امروز تشریف نمیبرین دفتر روزنامه؟ غصویلتون رو گذاشتم اونجا؟ نه شما اشتباه کردیم بردیم گذاشتین اونجا کسی اونجا منتظر من نیست من با جناب کاشفی گفته بو کردم شاید بهترین باشی که برگردین شما چیکار کردی؟ کردی روشنشون کردم. به تفسیر براشون توضیح دادم که از دست دادن شما چه پیامت هایی میتونه براشون داشته باشه بهشون گفتم باید قدر و عرضش هنرمن به ارکاس پردن جرعتو بدونم من اجازه نمیدم به شما زور بگن همین امروز همین امروز برگردیم خیر. خیر، خوامش اکی بود، مثل اینکه که دم گرم من با آهن سرد و شما اثر نمیکنه. حالا دو کلمه از من به یادگار رو آدم ها توی دنیا دو دسته. یا رعیت هم یا ارباب، دستیسه سبا وجود نداره همثال من و شما که رعیت این هایی هم که شما خیلی خوب میشتسیدشون عرباب ناف بنده بجنوالی رو با رعیتی بریدم ناف اونا رو با عربابی حالا این وسط اگر یک عربابی بخواد قطعی رعیت بشه انصاف بخرج بده به شما قول میدن روزش با هفته نکشیده هفتهش به ماه نرسیده سر و ته میشه اگرم یک رعیتی بخواد پا تو کفشه عربابا بکنه اندوی اونا رو در بیاره که بدون بال پرواز کرده سرنگون میشه بنده که ممورم و معذور توجیه هم دارم که از بالاها به من دستور دادن شما چی میخوایی بگی؟ اگر بنده به جای شما بودم همین الان میرفتم میگفتم که من با انتخاب خودم بدون هیچ اجباری اینجا کار بکنم اتفاق عجیب قرار نیست بیافته منو بازی ندید خانم شکی با هم من میدونم قصد از کجا هم شما خوب نیستدم گربه کوره باشه و بدون منظور تا بدن بخوره تندن بدره آقا سیگار سیگاره تلخ میده دست مردم یه سال بهش تعظیم میکرن من و شما که حساب اون میگه معلومه اون نامه در مورد منه این بار احترام میتونه نگه میدارم هیچی نمیگم اما اگر دفعه دیگه منو رعیت سودجوی خانم... رو معرفی کنین من خودم دفعه گفتم ما همه من شما میشونید هر جوری که دلتون میخواد خودتون رو خطاب کنید اما وقتی در مورد من حرف میزنید حرفتون دهنتون بعد مزده مزده کنید یه نفر بهتون دستور داده که من از کار بیکار کنید یه گردن کلوفترش بهتون دستور داده که من برگردونید غیر از اینه خانوم شکریبه کدومه کجا میریم؟ بولمانه خانمه شاکیباست چیم نرست داره؟ نمیدونم روکارت نوشته اونه هاش خانمه شاکیبا دبا سبزه خانمه بله اینو امضا کنید دوستن این چیه؟ نمیدونم روکارت نوشته لطفا اینو از این طرف بریدش. نه نمیتونم برای من مسئولیت رو باید تحویل بدم. باشه باشه باشه امضا کن. با، اوغادیس مبارک باشه. چی مبارک باشه؟ رو خیانت سلام سلام سلام. چی مبارک؟ سلام، سلام. خوب بخیر. سلام. عقور بخیر. سلام پرویس شما این طرف ها؟ شنیدم یه سری بازرگی نامرد بازار قماشو به هم میتنم بله همینطوره بالاخره یه ده میخوان با دوز و کلک میخوام بار وارد کنم بار پارچه چلو بار من نمیتونم اگه شما؟ شما چرا باید بار پارچه وارد کنید؟ اون دفعه آوردم سودم کردم اون دفعه هم میخوام سود کنم همینکه یه ده بداخت بیچاره رو که بردارم برش شکست میشن و برش شکست دیگه میشن اگه فکر میکنیم با این کارا جواب مهوانو فرم کنیم فرقی نمیکنه کنه پسر جان پرمیز شما که شرایط منو میدونیم من بدون پدر بزرگ شده رو پای خودم بایست دادم این کاری هم دارم میکنم فقط به خاطر اینکه کار خیر انجام آفرین آفرین که به فکر مردم هستی خدا حبزت کنم من بار پاکر رو میارم شما هم تو بازار تختش میکنم یه بهتون بگم چیکار کار برس میکنم عشق تو تو انجیر بابان گفته داروه براتون کن باید حروب تو تو خانوادت بخوری پولش چقدر میشه؟ پولشی مال باقی خودمونه بی بگیرش نه نمیتونم. سلام پار خسته خستا نباشه سلام دخترم چی شده؟ زود اومدی؟ گفته بودم ظهر به بعد؟ مالا ظهر به بعده ا؟ اومدم بگم مشکل من تو دفتر روزنامه حل شد دیگه قرار برگردم برم سر کار تو دلت با کار روزنامه است درتشو خوندم من عاشق روزنامه نگاریم کاشکی برنمی گشتی به اون روزنامه ولی خب حالا که میخوای برگردی به توصیه میکنم در مورد تریاک بنویست در مورد این شیر کشمونها که کل من رو کتو برداشته در مورد این چیزا مطالب نوشتم. متلم در مورد ریشهاش بنویس چطور میشه که یک ملتی اینطور دوچار عرفیون زدگی میشه چیا واقعا در سودش. شما یعنی شما میل مردم و نرشگی رو به کسی کسان دیگه ای رفت میدین؟ نه اشکال از غفلت ماست نه این نسبت که میدین حواسمون نیست چه بلایی داره سرمون میاد تو حواست باش من حواسم هست توی کارم هم خطا نمی کنم شنیدم عرفی مستانه فرمو <متصفح> اگر آتش به زیر پوست داری نسوزیگر علی را دوست داری علی چه عجب یه بارم شما قدم رنجه فرمودید محل کار من از بوی داروی زهور خیلی بدم میاد از بوی الکل خون که بهتره خانم دکتر فکر میکنیم ایشکشی مهراده مناسبتش؟ خوب خودتو میزنی به اون را من ازت یه خواسته دارم میخوام در حقم خواهری کنی میخوام مشکل رو تو حل کنی دارم همین کارو میکنم، معلوم نیست؟ نه فروغ. ازت میخوام یه جوری که مهراد پریشون خاطر نشه این مسئله رو فیصله بدی چرا؟ کی بهتر از مهراد؟ هشکی فروخ جان عزیز دلم هشکی؟ من الان نمیخوام ازدواج کنم تو خودت که میدونی <تصفيق> یه موقع این حرف رو میزدی باورمش مهراد مهرادم باورش میشد ولی الان دیگه نه الان چی شده که باور این مسئله انقدر برای شما خواهر و برادر سخت شده؟ با ارادت قلبی خواهش میکنم فروغ تو دیگه حرفای لقبار من نکن نمیتونم به خدا داری خلوازی در میاری؟ یارو سن باباته هیچ خبری نیست هم. میدونی چیه داشتم فکر میکردم این یارو بهونه است اصلا مگه میشدم همه این و زندگی گذشته و خاطره هاشو با دست گل فراموش کنه مگه از این ها, کم ها با تناب پوسیده مردم نره تای جا بهت گفتم هنوز هیچ خبری نیست سفره یه روز آدم خونه خراب میکنه برای یه شب و سبا حواست باشه کیو داری از دست خیلی نخوش احبالم فروغ زمان تو که عذیت هم نکن خیلی کار دارم ده خروش نه خیشا خشن ندادین مینا بابا بنو بنو بنو بنو بنو بنو بنو بنو بنو سلام وان جان خوبی سلام حال شما می هنوز دفتر روزنامه ای بله نشد من بیام اونجا؟ نه متاسفانه پس اگر جایی خالی شد خبر ب چشم. آمه. بزن مشکو بزن آرو سوفی بزن مشکو آرو شادت برو چی خبره بزن بزن آقا یه چی میگی گوشو سلام رو بگیر آقا نکن مهروت خور بگونا کنا گفته بودم بچگا کنین من درست نگفتم تو درستش گفتی آقا یول آقا یول ام چپ کر ترزین ده زونه کن رو جرات، تکه، ترس، ترس، هر کی می تشهایم فدرت ترس. اومدم چیست را ضربیش کردی و سپس چی ازش می کردی؟ رفتی به من تو صوت رفته، میبرد کی رو سدا؟ فکریم ازش کرد. خسرو؟ داله، خسرو. اگه برف تو گوش کنم، اون پدر منو در میاره. اگه حرف اونگوش کنم تو با آدمات بریزی اینجا میزنی میسوزونی. خب یه باره که من رو خلاص. خلاس دهاتی چیکار میتونه با تو بکنه حالا خسروخان شد دهاتی اگه اینقدر کوچیکه، اگه تو بهش میرسید که نمیامده اینجا دقا تو سر من خالی کنی صد تایی مثل من و تو همون رو همون خسروخان میخرب میکنه میدونی چرا چون پشتش به اون بالای بالا گره. مزخرف. همون بالای بالا به من تلفن کردن گفتن اگر صبح نشده خانم شکبار رو بر نگردونم. خودم و همه کارمندا طی زندان.